بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام و سلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی علیه التّجبینا تاهرین لاسی ما بقیت الله فل ارزین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 السلام علیه علی ابن الحسين زین العابدين، السلام علیه محمد ابن علی علي باقر علم نبیین، السلام علیه جعفر ابن محمد الصادق، السلام علیه موسى ابن جعفر الكاظم، السلام علیه علي ابن موسى الرضا، السلام علیه محمد ابن علي الجواد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 ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسین و وعلى اصحاب الحسين قال الحسين عليه السلام انا ادعوكم الى كتاب الله وسنه نبيه فان السنه قد اميتت و البدعتقد اخیت فا تسمع تسمه قولی توتی و امری اهدکم الی سبیل رشاد در شبهای گذشته به عرض رسندم تبیین ابی عبدالله الحسین عليه السلام در شناسندن روشنگری نمودن مودن به این مطلب که موانع تحقق هدف انبیا چه بوده است آیا انبیا در رأسشون پیغمبر اسلام وقتی از طرف خدا مبعوث می این همه رنجها، عذیتها و این همه شهادتها، زندانها، تبعیدها این همه هجرتها آیا برای تحقق چه خاستهی بوده است اگر شخص نبی اکرم که طبق آیات قرآن کریم و ما ینتقان الهوا، انه و الا وحی یوهاست سخنی گذافه ندارد فرموده ان ما نبیون به مثل ما اوزید هیچ پیامبری به اندازهی که من عذیت شدم عذیت نشده است تحمل این همه اذیت ها را برای چه فرمودن خدایی که انبیا را مأمور کرده بلکه در مقابل این مشکلات نه تنها نفرموده بس است و خسته شدید و رها کنید بلکه میفرماید فستقم کما امرت در مقابل این همه اذیت ها بنای بر صبر و استقامت و ایستادگی که چه شود و اون خواسته اونها آیا در طول تاریخ تحقق پیدا کرده است یا نه ارز کردم در دستبندی اول دو گروه می شوند گروهی منکر وحیان مخالف حقایق ماوراء ماده و متافیزیک اونها می دین افیون ملت هاست شما سعادت و رستگاری و یک جامعه ایدئال یا حتی افراد رشدی را بر مبنای تز نبوت و وحی پیجویی نکنید و اگر میخواهید جامعه شما رستگار شود دین را از جامعه بزدایید اما دسته دوم که وحی را میپذیرند عدله مفصل کلامی فلسفی، عرفانی در اثبات حقانیت وحی و انبیا ارائه کرده اند که خود بحث بسیار مفصلی است اما در بین پیروان ادیان و معتقدین به وحی به ویژه در دنیای اسلام که مورد بحث ماست از همان صدر اسلام تا زمان نهازا تا امروز بوده اند و هستند کسانی که نحوه معرفت آن نسبت به وحی و توقعشون از کارای وحی بگونه است که اون معرفت ناسحیح و اون توقع نادرست خود از موانع تحقق هدف انبیاست و این مشکلی بوده است که ما در طول تاریخ اسلام داشته و داریم از مکتب ابی عبدالله الحسین علیه السلام باید درس بیاموزیم که اگر این مشکل مشکل بوده و هست ما به عنوان پیروان ابی عبدالله چه نقشی می توانیم داشته باشیم هم در ایجاد معرفت درست و هم در ایجاد توقع صحیح نسبت به کارایی وحی و زمینه تحققش را فراهم نمودن دسته ای که در دنیای اسلام پذیرش وحی داشتند نبوت را علی الظاهر پذیرفتند اما به این شناخت و بینش رسیدن که وحی نمی تواند یا اصلا معموریت ندارد دایره رسالت وحی مسائل امده اجتماعی و حل معضلات جامعه بشری نیست کمال وحی کمال حد است. تنها در یک محدوده معین و مشخص زندگی فردی میتواند شما را راهنمایی کند و از آن بهره ببرید به کمال فردی برسید ولی برای دفع کمبودهای وحی در شعون اجتماعی به عقل جمعی و تجربیات انسانی متکی شویم این به صور مختلف از بسیار قدیم الایام حتی صدر اسلام وجود داشته است که جان این مطلب را اگر بشکافیم به این مطلب رفت پیدا می کند که ما به عنوان انسان وقتی قرار وحی را بپذیریم مرحله اول از وهی بحرمند شویم بر مبنای نحوه معرفتی که نسبت به وحی پیدا می‌کنیم اون عامل اصلی که در وجود من و شما نهفته شده و ما را وادار می‌کند که وحی را بپذیریم دلائلی در اثبات حقانیت وحی بیاوریم و بعد نسبت به اینکه که وحی چه میگوید، چه میخواهد، چگونه ممکن تحقق بیابد، اون را هم بشناسیم این عقل است. همون تعبیری که دیشب از زبان برخی از حکما اشاره کردم که آیا رابطه عقل با وحی رابطه تنها مفتاح است یا مصباح اگر کلید باعث می شود شما در خانه ای رو باز کنید وارد خانه شوید ولی بعد از اون که در خانه رو باز کردید وارد خانه شدید کلید نقشی ندارد اما مصباح چراغ، هم راه رسیدن به خانه را به شما کمک می کند. هم بعد از ورود در خانه نحوه استفاده در داخل این منزل به نور چراغ وابسته است به همین دلیل در فرهنگ دینی ما عقل ستوده شده است پایه معارف دینی قرار گرفته است در منابع فقهی ما هم در کنار کتاب و سنت و اجماع عقل مطرح می شود اما همه گرفتاری های ما در اینجا این است که بشر به فرموده امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه اما مفرتون او مفرت یا افراطی می شود یا تفریتی گروهی در دنیای اسلام پیدا شدن مثل اشائره که حسن قبه عقلی را به کلی منکر شدند. و متاسفانه در دنیای شیعه هم اخباریون و منطبع اخباریون تا به اونجا پیش آمدن که دیشب نمونه هایی رو از نوشته خوندم که هر نوع تفکر، هر نوع تعقل، هر رو اندیشیدن در مبانی وحی و برای استفاده درست از وحی را منکر شدن شکل توند روی خطرناک امروزی اینگونه تفکر که در صدر اسلام هم وجود داشت داعشیان داعشی, داعشی ها یک چهره ای از خوارج صدر اسلام اند اگر امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه درد دلی دارند نسبت به خوارج با این بیان این من بودم که توانستم در مقابل خوارج بیستم. یعنی چه؟ یعنی انقدر ظاهر فریبنده داشتن. پیشانی ها پینه بسته. شبها مشغول ذکر و راز و نیاز روزها سائم و روزدار مرتب مشغول قراعت قرآن و ظاهرنم شعارشون لا حکم الا لله حکم فقط همونیست که خدا میگوید اما بر چه مبنای فهمی از حکم خدا؟ اون گونه فهم قشری غیر عمیق غیر منطقی که در مکتب وهابیت ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه تشریح میکند که چون قرآن گفته است يد الله فوق هم شما تفسیر دیگری بکنید غیر از اینکه خدا دست دارد و دستش خیلی گنده و بزرگه و اگر تفسیری در زیل آیه الرحمان و علل عرش استوا غیر از اینکه که یک است خدا بالای اون کرسی نشسته شبهای جمعه از این کرسی میاد پایین میره بالا غیر از این تفسیر کردید قتلتون واجبه یعنی یک برخورد قشری سطحی بسیار بسیار خطرناک این در صدر اسلام خوارجن که خون به دل علی ابن ابی طالب میکنند و در زمان ما هم به شکل داعشی ها و دیگران این یک شکل که من خیلی وارد این محدوده این چند شب نشدم چون بحثم جنبه دیگری بود اما نکته دیگر عقل با وحی رابطه دارد بله عقل قرار دخالت کند بله ولی چگونه اگر اونها گفتن عقل دخالت نکند که خود یک خطره و این خطر قشریگری انقدر خطرناک است که مرحوم استاد شهید متعری در کتاب اسلام و مختزیات زمان درد دلی که در این رابطه می میفرمایند با کمال تأسف هنوز ریشه ها و رگه اخباریگری در بسیاری از فقعه ما هم وجود دارد این شهامت رو کرده اند که بگویند و نوشته شود اون یک طرف قضیه است که بحث مفصلی داره خطرناک است چون نمیذاره وحی خوب شناخته بشه وقتی وحی رو خوب نشناختن نوبت به تحقق وحی و آرمان وحی و هدف وحی نمیرسه اما دسته دوم چی؟ میگن رابطه عقل با وحی گاهی به این صورت مطرح کردن آیا عقل کفایت نمی کند؟ دیگه به وحی چه نیازی داریم؟ این البته مال دسته اولی است که میخوان به کلی وحی رو رد کنن ولی با کمال تأسف در دسته دومی که علا ظاهر وحی را پذیرفتن این حرف به یه شکل دیگری زده شده و زده میشود در بین نحله ها و فرقه ها و گروه های مختلف فکری یک فرقه است در تاریخ ملل و اندیشه ها به نام براهمه براهمه رابطه عقل و وحی رو اینجوری مطرح کردن میگن مطالبی را که انبیا میآیند و میآورند به عنوان وحی الهی یا با عقل شما موافق است یا مخالف اگر مخالف عقل شماست سرمایه وجودی شما که قراره قبول کنه یا رد کنه که عقل است عقل مطلبی که مخالف او باشه که نمیتونه بپذیره پس چه فایدهی داره؟ اگر موافقه با عقل است خب خود عقل که فهمیده اینکه تحصیل حاصله دیگه چی نیازی بشه؟ این یک نوع بدفهمیدن از کارایی عقل در رابطه با وحیه جوابش هم بزرگان ما در طول تاریخ دادن من جمله مرحوم خاج نسیر الدین توسی این مرد بزرگ در تاریخ تشیع که نسیر الملت و دینش گفتن در کتاب مشهور تجرید و به این مطلب پرداخته و در سایر آثارش جواب منطقی مفصل دادن فقط یه اشاره میکنم میگن مطالبی را که وحی میآورد مخالف عقل نیست اینم که برخی عزیزان در عصر ما گاهی این مطلب رو مطرح میکنند ما احکامی را در فرامین اسلامی به نظر میاد که با عقل سازگار نیست اینجا عقل با وحی بناس رابطه ای داشته باشد اشاره خواهم کرد بیاری خدا انایت بکنید یک ما مطالبی را که وحی بیاورد با عقل مخالف باشد نداریم مباحث اعتقادی وحی خدا هست او هكما کردن در اثباط اینکه خدا هست اورافا چه مطالبی رو مطرح کردن متکلمین چه دلائلی رو اراده کردن خدا هست خدا یکیست خدا جامعه همه صفات کمالیه است انبیا فرستادگان الهی‌اند معصومین از قدرت مافوقی برخوردارند بر مبنای عنایت الهی قیامت حق است و اول تو مسائل اعتقادی ما تو مسائل اعتقادی وحیانی اونی که وحی باشه بله اگر یه مکتبی میاد با عنوان وحی گالیله رو محکوم میکند که چرا میگی زمین میگرده بیا توبه کن وگرنه تو را میکشیم این با علم نمیسازه با عقل نمیسازه این حرف وحی نیست اینو بنده به عنوان وحی دارم میبندم وحی را عرض میکنم اگر مطلبی از وحی باشد در مباحث اعتقادی وحیانی اسلامی با کمال قدرت بنده به عنوان کوچکترین در مکتب شیعه ارز میکنم ما موردی خلاف عقل نداریم بحث میکنیم استدلال میکنیم دلائلی که گفتن ارائه میدیم بله بعضی جاها انسان ممکنه متوجه مطلب نشده باشد وقتی که براش توضیح داده شد مطلب میگه عجب پس اینجوریه اما در مسائل دیگری مثل اخلاقیات ما تو مسائل اخلاقیات یک دستور اخلاقی که با عقل نخوره نداریم روش بحث میکنیم تو مسائل احکامی بحثی داریم که در ادامه عرض خواهم کرد که بحث اجتهاد در مقابل نص یا اجتهاد با معیار عقل در تشخیص حکمت حکم علت حکم سبب حکم منات حکم بر مبنای اون اصل اساسی که امام فرمود امام رزا علیه السلام امام صادق علیه السلام علینا الغاول اصول و علیکم به اونجا وقت بحث میکنیم آیا خلاف عقل داریم یا نداریم. حالا به میزانی که شد عرض خواهم کرد. ولی این قسمت مرحوم خاجه نسیر میگه شما مطلبی ندارید در وای که با عقل ناسازگار باشه اما اگر مطلب با عقل سازگاره عقل رو میکنه عقل دل خوش میکنه آفرین خوب بهم درسته برو جلو شک نکن در مقام تشبیه بخوام عرض کنم بنده سر یه چار ر تابلو راهنماییم وجود نداره. میخوام مسیر X برم. الان متحیرم. راه چپ برم، راه راست برم، شمالو برم، جنوبو برم. به تردید افتادم. عقلم با یک قرائنی فهمیده است که باید از این راه شمال بگیره بره جلو. اما یه پلیس راهنمایی اونجا واستاده میگه راست درست فهمیدی برو شک نکن. من دلگرم میشم. وحی میاد اونجایی را که عقل هم میفهمد بهش میگه خوب فهمیدی بر برو جلو و لذات در بحث فقه ما فقهای ما این بحث مطرح کردن که امر و نحی که از طرف پروردگار برای ما معین شده دو دست است امر و نهی مولوی امر و نحی ارشادی امر و نهی مولوی امر و نهی است که اگر وحی نگوید عقل نمیفهمد این الان بهش میرسم امر و نحی ارشادی امر و نحی است که اگر وحی نگوید عقل میفهمد و لذا اون قاعده ای که علمای اصول شیع نقل کردن کلما، ما نه کل ما کل ما به العقل حکم به شر و کل ما حکم به الشر حکم به العقل اولی کل دومی کل. با این دقت و اصولی به چه معنا که الان ارز کردم وارد میشم اگر این قاعده را در علم و اصول فقه اصولیون ما مطرح کردن بر همین مبناس میگن که شما یک سلسل مطالبی هست عقل میفهمد مرحوم شیخ انصاری که بزرگان ما در خصوص او گفتن خاتم المجتهدین مرد است در دنیای فقه شیعه کتاب معروف مکاسبش چندین موارد رو اسمی میبره میگه اینجا اینجا اینجا که نمونههاشو رو عرض خواهم کرد اینا جز مستقلات عقلی است. مستقلات عقلیه یعنی چی یعنی عقل بل استقلال میتونه بفهمه وحمیات تقویتش میکنه اینو برای شما امضا میکنه مثل چی مثلا حسن عدل قبح ظلم قبح عقاب بلا بیان بعد یه مثال میزنه من مثال مرحوم شیخ انصاری رو یه کمی کم و زیادش میکنم امروزی ترش میکنم ولی اصل مال ایشونه ایشون میفرمایند مثلا فرض کنید آقا الان یک انسانی در دورترین نقطه افریقای جایی به اندازه ای که می بفهمد به تلاششو کرد ولی شرایط و امکانات برای اثبات حقانیت اسلام برای او وجود نداشت به بفهمه اسلام حقه اگر مرد معاخذه می شود که چرا مسلمون نشدی میگه نه میگه برای اینکه شرایط برای فهم وجود نداشته او میدونه و خدای خودش اما اگر همین انسان دزیکد مؤاخذه میشه میگه بله برای اینکه اینی که عقلش هم بفهمه اینی که وجدانش هم بهش دستور میداد کلم حکمه به العقل کله یعنی در اون محدودهی که عقل میتونه نظر بده اون میشه مستقلات عقلیه خب اونو شرع هم میاد امضا میکنه لذا شما مواردی که عقل بل استقلال بتونه نظر بده تو شر ندارید که رد کرده باشه و لذا امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه اول نحج البلاغه رابطه وحی و عقل رو ببینید چقدر قشنگ بیان کردن فبعص الله فی حم صلح و واتر الهم امبیا ولهستعدو فترته میثاق فطرته و نعمته و لهم دفائن العقول خدا امبیا رو معمور کرد؟ پشتر هم اینا رو فرستاد متواترن و پی, در پی اومدن تا چه بکنن؟ این نعمت عظیم فراموش شده درونی ما رو بیاد ما بندازن و عقل را فعال کنن این میشه کل ما حکم به العقل حکم به شر ما تو فرهنگ شیعه تو مکتب اصولی نه تو مکتب اشعری اهل سنت نه تو مکتب اخباری شیعه نه تو مکتب اصولی شیعه این رو داریم پایه اجتهاد بر مبنای زوابط و قوانین اجتهاد میشه و لذا اگر امق دین را به صورت وحی قرآن و سنت معصومین علیه السلام در اختیار گذاشتن کسی مجتهد است که این ضوابط رو تو مرحله اول بشناسد و بتواند با اون قواعد کلی در مستقلات عقلی رابطه این مستقلات عقلیه و شعر را بداند و اینجا فتفا صادر میکنه اما مهم اینجا به بعد. گرفتاری ما اینجا به بعده اونجا چیه؟ اونجایی که فرمود کل ما حکم به شرع حکم به العقل هر چرا که شرع حکم کرده عقل حکم میکند اینو اصولیون گفتن بله درسته بله ولی به چه معنی؟ درد ما اینجا سالا به چه معنی؟ به این معنی که مثلا فرض کنید شرع فرموده نماز صبح درکت. خب آقا اگر شرع نمیفرمود نماز صبح درکات کجا عقل ما میتونه بفهمه حسن شرعی برای حضرت حق در قوانین و مقررات اسلامی صبح درکت نمازه بنده اول از آن صبح پاشم وضو بگیرم رو به قبله بشینم تا طلوع آفتاب یک ساعت و نیم دو ساعت درکت نماز صبح و نخونم قرآن بخانم، دعا بخونم، مناجات بکنم، راز و نیاز بگم، آفتاب زد، لباس بپوشم برم، کارم. من طبق قوانین شرع مقدس اسلام عبدالله هم؟ نه. آقا دروغ گفتم نه، مردم آزاری کردم نه. من حکم به غیر ما انزل الله دارم اینجا. همونی که بحث کردیم و من لم یحکم به ما انزل الله فهوبل فاسق. قاسقون حوال ظالمون، حوال کافرون حتی بیان کرد که آیاتشو خوندیم این جز مستقلات عقلیه نیست، عقل میفهمه، اینو باید شعر بگه پس چطور اونی که شعر گفته عقل میفهمه؟ میگه به این معنی اگر شرع میگه نماز صبح دو رکعت زور چهار اگر شرع میگه امروز آخرین روز ماه مبارک رمضان ده دقیقه مونده به اذان مغرب یه لغمه خوردی معصیت کردی فردا اول شواله اگر نخوردی معصیت کردی اینو کجا عقل میفهمه این جزء محدوده مستقلات عقلیه نیست اون کله اینو در بر نمیگیره ولی عقل اینجوری میفهمه میگه با مقدمه عقلی فهمیدم شعر حق است با عقل فهمیدم یه احکامی است من نمیفهمم و اینکه میفهمم نمیفهمم خود یک فهم است و برای اینکه بفهمم تکلیفم در اونجا چیست باید برم سراغ اونی که او حق فهم دارد او شارع است و باید از طریق شارع بگیرم پس چون شارع گفته است عقل شارع را عقلی پذیرفته این رو پذیره اینجا ما مشکلی که داریم چیه هم در صدر اسلام هم در زمان ما اومدن عقل از محدوده خودش بردن جلوتر اجازه بدید من نمونه هایی رو نقل کنم که بدون مدرک سخن نگفته باشم خوب انایت بفرمایید در زمان من یه نمونه از صدر اسلام فعلا براتون بگم فقط یه نمونه در کتاب سنن عوی داوود جلد چهار صفحه دویست و دوازده دوستان انایت دارن یکی از صحاح ست است یعنی کتاب کتاب معمولی نیست سنن ابی دابود جلد چهار صفحه دویست و دوازده میگه که صفیان سوری گفت هر کسی تصور کند که علی از سایر خلفا به خلافت شایست است صحابه را در انتخابشون تخته کرده است و تصور نمیکنم با این کار هیچ کاری از او در درگاه خداوند قبول شود یعنی چی؟ حالا شکل امروزی این حرف چیه؟ خوب دقت کنید یعنی چی؟ آقا نس نداریم که پیغمبر فرمود افزلو کم علی اعلمو کم علی اعدلو کم علی عزاكم علی علی مع الحق و مع علی اینو کراراً نص سریح داریم یا نداریم این که دیگه کسی منکرش نمیتونه بشه خب پس ابن ابی حدید معتزلی شروع شرح نهج البلاغه را بر مبنای النص که قطعی پیغمبر هی فربوده هیچیه با علی نمیتونید شما برابر کنید حسابشون با بقیه جداست بعد از من و کلا اثرت من حسابش با بقیه جداست خب اینو میدونه لذا ابن ابال حدید وقتی میبینه دیگران جلو زده شده چی میگه میگه الحمدلله الذی قدم المفذول علی میگه خدا اینجوری خواسته دیگه چیکار کنیم خدا خواسته شما کار خلاف خودتون میکنید به نام خدا نسبت میدی حالا اینجا چی میخواد بگه میگه درست پیغمبر این گونه بیان فرموده نسه ولی چون صحابه بعد از پیغمبر این کارو کردن ملاک برای ما تشخیص صحابه است نه نسه وحی پس اگر کسی بگوید انتخاب صحابه غلط است منتخب صحابه از اونی که در نسامده بالاتر نیست او رو ما مسلمان قبول نداریم یعنی چی؟ یعنی وقتی یه عده بعد از پیغمبر میان به تشخیص شخصی خودشون روی وحی حرف میزنن نه مستقلات عقلیه که جزء محدوده قضاوت عقله نه در غیر مستقلات عقلیه با ملاک عقل و شعر عقل را به عنوان مصباح بگیریم روشنگری کنه مطلب را بفهمیم و استنباد کنیم نه میگه ما حق داریم حتی خلاف نص سریع پیغمبر نظر بدیم خب نتیجه چی میشه؟ پیغمبر میگه از طریق ایکس شما باید به سعادت برسید من میگم نه ایگرگ بهتره ایگرگ میارم به سعادت نمیرسم بعد میگم چرا هدف بیا تحقق نیافت؟ با شما که نزاشتی که حالا در زمان ما چجوری شده تکامل یافته است یه شکل امروزی پیدا کرده خطرناکتر اون چیه من اول از غیر مسلمونا که یه حرفا رو زدن دو نمونه بخونم یک شلایرمخیر متوفای 1768 میلادی در الهیات پروتستانها میگه که وحی به این معنا نیست که خدا پیامی را به پیامبر القا کرده باشد بلکه مواجهه با خدا داشته و از این مواجهه تفسیری دارد وحی در واقع همون تفسیر پیامبر و ترجمان او از اون مواجهه و تجربه اش می باشد کلامی بین خدا و پیامبر رد و بدل نشده زیرا تجربه فارق از زبان است برابر این وحی کلام پیامبر است کلام خدا نیست امروز عینن حرفو میزنن یا نه کلام براتون میخونه فرید وجدی دایته معرف معروف قرن بیستمش جلد دهم ده صفحه 715 تحت تاثیر این تفکر چی میگه آنچه پیامبران به نام وحی عرضه کرده‌اند انعکاس افکار درونی آنان است پیامبران مردانی خیراندیش و اصلاح طلب بودند که خیراندیشی درونشان به صورت وحی گاه به صورت ملک تجسم یافته و گمان بردهاند که از جایگاه دیگر به آنها الهام شده است اشتباه میکنن خیال کردن اینا تخیلات درونی خودشونه لذا نتیجه این حرف چی میشه؟ حالا اینا از فرید وجدی و از اون دیگری عرض کردم نتیجه این حرف چی میشه؟ لزومی نداره ما اینا را حق محض بدونیم این بحثایی که شببا قبل کردیم انل حکم لاله الله حکم ها از طرف خدا باشه با تابع حکم علایی این آدمای خوبی بودن ولی به درد همون زمان میخوردن. حالا که دیگه کم کم ما میتونیم با تفکر رو تا عقل خودمون یه چیزای جدیدتری درست بکنیم ق یبان شباش باید تنبهه وحی رو زد. این تفکر توی برخی از ما مسلمین در رابطه با عقل و وحی اومد به چه صورت تجلی کرده. من اجازه بدید اسم نبرم ولی مطلب رو بخونم ایدعال آن است از معاصرین گفتن ایدعال آن است که مردم رفته رفته از تزکار نبی مستغنی گردند دیگه کم کم خودمون رو پا خودمون باسیم دیگه نیازی نیست بیریم تذکر پیغمبر چیه امروز دوران معموریت نبوی پایان یافته است و عقل بشر به جای وحی می نشیند عقل به جای وحی 50 سال قبل تقریبا مرحوم استاد متحری کتابی نوشتن خاتمیت 50 سال قبل این فریاد و زدن یه جریان فکری داره تو جامعه ما پیش میاد شروعش هم از کجاست ایشون سرقت و معلوم کردند. اصل حرف مال شاه ولی اللهی یاده دهلوی کی بود این حرفو چرا زد دیگه اینجا جای بحثش نیست و فرصتش هم نیست بعد به کی رسید بعد به کی رسید بعد کجا اومد اینجا در داخل کشور ما کیابش رسیدن ایشون بعد از یک کتاب چند صد صفحه‌ای در این رابطه حواسونو جمع کنید این تفکرات داره شما رو از وحی جدا میکنه این تفکرات داره ارزش وحی رو میکوبه آخرین مطلب و شورده ایشون در این کتاب چند صد با این بیان خاتمیت به معنی ختم نبوت است، نه نبوت جدید دیگه ختم شد یعنی دیگه تمام شد دیگه ما نبی نمیخواییم حالا به بعد باید رو پای خودمون باستیم خب وقتی چنین این تفکری در یک جامعه ارواج پیدا بکنه ما توقعی که از عقل داریم عقل وحی رو خوب بفهمه آقا من یه مثال عرض می‌کنم بعد اجازه بدید دو مطلب از دو متفکر یکی مرحوم الله محسن فیض کاشانی یکی مرحوم علامه طباطبایی از این دو شخصیت جان من دو نمونه است وگرنه اینا خیلی بحث داره و نمونه های بسیاری میشه مطرح کرد ببینید اینا چجوری مطرح کردن با یه مثال وارد میشم انایت بکنید آقا بنده رو توی کلاسی ثبت نام کردید استادی در این کلاس فرض بر است که این استاد اصلا اشتباه نمی کنه. استاد حقه. جزوه‌ای که به من داده درسته. مطالبی که داره به من درس میده همش درسته. به من میگن عقلت رو به کار بنداز سر کلاس. عقلت رو به کار بنداز سر کلاس برای چیه؟ یعنی ببین استاد چی میگه خوب بفهمی. این استاد مطالبهش چیه قشنگ متوجه بشی بعد اینو در جایی که بناس به کار ببری به کار ببری. حالا بنده بیام در مقابل این استاد حالا او استاد من مبتدی در مقابل این استاد من مبتدی بگم آقا به من گفتن عقل تو به کار بنداز عقل من میگه شما این حرفی که میزنی نه این حرفی که من میزنم بله نتیجهش نمیشه پس اونی که اون استاد میخواد من نمیشم ما نبی را به عنوان این که از طرف خداست و حق است قبول داریم یا نداریم درون دینی برون دینی حالا یه اشاره درون دینی اجازه بدید بکنم یک شما وقتی در سوره مبارکه بقره بغره آیه 120 توجه میکنید یه بیانی رو جالب مفسرین به این توجه کردن قرآن کریم میفرماد ولن ترزا انکل یهود و ولن نصارا حتی تتبع ملتهم برخی از مفسرین میفرمایند چرا فرموده یهود و نصارا نفرمود دین مسیح و دین حضرت موسی چون ادیان واقعی با هم اختلافی ندارند بحث تکامل و تحریفاشون از بین بردن یعنی کسانی که خودش رو پیرو به انبیا میدونن یه حرفایی با از خودشون میزنن حالا توی پیغمبر که میای میگی آقا وحی اینه حق اینه اینا حاضر نیستن حرف تو رو گوش کنن لذا میگن تا شما تابع ما ما تو رو قبول نمیکنیم ما اینجا به بعدش قول بگو دقت کنید قرآن رو ولن ترزا ان کل یهود و نصارا حتتا تتبع ملتهم بیان عام این آیه این است نه تنها پیروان دروغین حضرت مسیح نه تنها پیروان دروغین حضرت موسی هر کسی که حتی خودشو پیرو یک پیغمبر خدا بداند ولی بخواد در مقابل توی پیغمبر که وحی آوردئی و معمور الهی هستی که حق را به مردم بشناسانی بگن تو رو قبول نمی کنی مگر تو ما را قبول کنی یعنی تو تابعه ما بشی تو عرف ما را بپذیری قول بگو حالا تو جواب اینا رو بگو چی بگو؟ اگه قرار هدایت بشی اگر قرار راه به ما نشون بدن اگر قرار باید و نباید در جامعه مطرح باشه این باید خدایی باشه قل ان هد الله هو الهدى ولئن تبعت اهواهم بعد الذي جاءكم من العلم مالكم من الله من ولی و لا چقدر ظریف قرآن کریم داره درد و درمان رو قبل از وقوع این وقایع پیش بینی میکنه و جواب میده ببینید دیشب عرض کردم از آیه پنجای سوره قصص خدا چی فرمود فعل لم يستجيب لك فعلم, فعلم ان ما یا اونجا میشه که جزن جز را تبعیت نمی کنن. زن و گمان است یا هوای نفسه اینجا میفرماید بعد از اینکه براشون بعد الذی جاءکم من العلم با اینکه فهمیدن تو پیغمبری تو معجزه آوردی تو اثبات کردی خدایی تو نشون دادی این قرآن وحی با وجود این وقتی میگن نه تو تابع ما باش پس اینا تبعیت نمی کنن مگر از هوای نفسشون خب کسی در مقابل تبعیت از حق بخواد تبعیت از هوا کنه رستگار میشه لذا قرآن کریم راه رستگاری رو چی میدونه قول ان احد الله و لا یعنی ما نه تنها ملت ایران امروزه در کره زمین اول به عنوان دروندینی با پیروان قرآن باید این سخن رو مطرح کنیم امروز باید تو گفتمانهای جهانی قاطعانه نچرسیم آقا اینا بازگشت به قدیمه اینا ارتجاییه اینا كهنهگراییه باید امروزی شد آقا اگر بحث دو دو تا چارتا مال هزار سال قبله الان افرادی پیدا بشن بگن ما خسته شدیم دیگه میخوایم بگیم دو دو تا پنج تا بنده داد بزنم نه آقا دروغ دو دو تا چارتاست نظرید مردم به دروغ ایمان پیدا کنن بایستید رو حرف خودتون بگن آخه اکثریت اینجوری میگن خب بگن باید رو حق ایستاد امروز روزی است که ما باید گفتمانهای دینی در سطح جهان برقرار کنیم و فریاد بزنیم آقا اگر قرار جامعه اسلامی رستگار شود فرق مستقلات عقلیه با غیر مستقلات عقلیه را بشناسد و در غیر مستقلات عقلیه جز حکم الهی حکمی را نپذیرد وگرنه بر مبنای نص صریح قرآن تابه هوای نفس شدن کم کم کارو به جای برسونم بگم آه ما خودمون کافی هستیم دیگه بذاریم کنار حالا فردا شب الله نمونه های عینی و عملیش هم از مدارک براتون میخونم حالا اونایی که گفتم رابطه عقل و بحث یک اصلا عقل هیچ هیچ هیچ مثل خوارج صدر اسلام مثل داعشی ها به یه شکلی هم در دنیای شیعه که متاسفانه دارن دامن میزنن اینو میذاریم کنار از این ور عقل بله بله بله تا جایی که دیگه وحی بس دیگه بذارید کنار نمیدونم من باز بخونم یا نخونم خجالت میکشم رنج میبرم ولی بذارید بخونم اب نداره بشر اسم میبرم بشر دوران کودکی و دوران بزرگسالی خود را تجربه کرده است آدمی در دوره کودکی تحت فرمان شهوت و غریزه است و در دوره بزرگسالی و پس از بلوغ دهت حاکمیت عقل که تنها همان سبب تسلط وی بر محیط است و چون عقل تولد یافت بایستی آن را با جلوگیری از اشکال دیگر معرفت تقویت کند بنابراین در دوره جدید بزرگسالی پشر چیزی به نام خرد استقرایی پا به عرصه گذاشته است که انسان را بر طبیعت و محیط اطرافش شیره ساخته و به جای قرائز نشنده و جای وحی را هم میتواند بگیرد جای وحی را میتواند بگیرد یعنی دیگه وحی را کنار خب حالا اونایی که این تندروی رو کردن عقل و نقل و تحلیل و اینایی که اجمالاً عرض کردم اجمالاً وگر نه بحث خیلی مفصلیه اینو ما تندروی گرفتیم اونو کندروی گرفتیم هر کدوم من دو نمونه از متفکرین شیعی که اینجا اعتدالی هن. میگن نه اون نه این بعدم یک روایت از امام رضا علیه السلام بخونم عنوان بیان امام معصوم من و شما و فرمایش امام حسین علیه السلام رو بهش نزدیک بشیم. مرحوم مولا محسن فیض کاشانی در صفحه 149 اصول اصیله میگه و ایزن و شرع عقل من خارج ولعقل و شرع من داخل شرع دین وحی الهی این یه عقلی از بیرون ولعقل و شرع من داخل عقل یه شرعی از داخله این میتونه برداشته از اون روایت معروف امام کاظم علیه صلات و السلام باشه در اصول کافی جلد اول باب عقل و جهت ان لله علی الناس حجتین حجته ظاهره و حجته باطنه اما ظاهر الانبیاء و رسول و و اما باطن العقول ما یه حجت داخلی داریم خدا در درون ما گذشته عقل یه حجت بیرونی داریم انبیاء رسولان ائمه میگه شهر عقل خارجه. یه عقل که جدایی از منه داره من داره منو راهنمایی میکنه. تشبیح رو دوباره به کار ببرم. بنده سر چار را دادم. اینجا نمیدونم باید از راه شمال برم به مقصد برسم یا راه جنوب. عقل منم قد نمیده چون اینجا تو محدوده عقل نیست. این دیگه جز مستقلات عقلیه نیست که آقا... قیاس شکل اول و بلدم قیاس شکل دوم بلدم هم همه اشعاریم هم که شیخ باهایی راجب مخکوب اول خین کپسانی همه اینا آ هم حفظم ضوابط هم اینجا جاش نیست و من سری یه چهاراب دادم میخوام برم مثلا فرض کنید که حضرت تبدول این ور باید برم یا اینور اینجا کار جای عقل نیست. اینجا باید عقل بیرونی به من کمک اونی که بلده به من میگه آقا جون اینجاست بگی برد میگم ممنون خدا خیرتون بده. میگه گه ش بیرونیه. اقلم یه شرع درونیه این اقلم مثل یه شریعتی در درون منه داره به من میگه که چه کار بکن چه کار نکن و هما متعازدان بل یتحدان این دوتا پشت همن دست به دست هم دادن و هم متحدن فقط زهره همانا آشکار میشه برای کسانی که این معنا رو میفهمن انهو لا طریق علال العلم احکام شرعیت المختلفت فیها فی في زمان الغیبه این معلوم است و آشکار است که در دوران غیبت امام علیه السلام وقتی دسترسی به امام معصوم نداریم علم به احکام شرعیه مختلفی که مورد رضای خدا و در وحیه است این الا لذی عقل صحیح الكامل نیست مگر کسانی که آقلن، عقل صحی دارند تو این زمینه زوابطش دارند صاحب و القدسیه بعد اخزها من اصول حل محکمه من الکتاب و سنت ثابته و اخبار اهل الویت المسموعه انهم به واسطه او بدونها و ناس اینجا بعدش عرض میکنم تا اینجا رو دقیق کنید میگه نمیشود، مگر کسانی که این زوابط عقلی رو دارن سالمن، بیغرزن، شنگ بیان سنت ثابته ای که از شهر رسیده بگیرن آیاتی که از طرف حضرت حق اومده اینا رو بگیرن کنار هم بذارن تطبیقش رو با شرایط نظام اجتماعی روز بر مبنای قانون شرع نه بر مبنای سلیقه شخصی خودشون بیابن و احکام را از توی دین در بیارن و این عظمت را اسلام داره که مبانی کلی را به شکلی گفته که افراد اگر اون ضوابط رو داشته باشن میتونن از اون در بیارن چون شما ببینید وقتی حکم میگیید یه موضوع دارید یه محمول حکم مثلا فرض کنید مشروبات الکلی حرام است موضوع محمول حکم حالا اگر شما اومدید بگید که مشروبات الکلی حرام است چرا؟ حکمت حکم چیه؟ علت حکم چیه؟ سبب حکم چیه؟ منات حکم چیه؟ اینجا میشه سلیغی بگم من خیال میکنم علتش اینه بعد بر مبنای این خیال یه چیز دیگرم بگم حرام خواه این غلطه شما خیال کردی از کجا معلوم منظور این باشه اما ظابطه عقلی شعر میفرماید مشروبات الکلی نجس است چون مایه مسکر است پس مناطش ذکر کرده حالا اگر یه مایه مسکر دیگه ای ما پیدا کردیم غیر از مشروبات الکلی میگیم چیه؟ میگیم نجسه. میگه آقا این زمان پیغمبر نبود میگم بله ولی مناتشو به من داد عقله اینو میفهمه از شرع در میاره نه این که بگه آقا طرف اومده کتاب نوشته خیلی همه و طلب داره ولی آدم خندش میگیره میگه این که پیغمبر فرمودن وضو بگیرید نماز بخوانید چون اعراب جاهلی دست و پاشون بوی عرق میداد تمیز نبودن برای اینکه اینا رو وادار کنه دست و پاشون رو بشورن بینه و وضو بگیرید تو خب شخصی به پیغمبر عرض میکنه یا رسول الله اگر غسل کردم غیر از غسل جنابت که میتونه جای وضو رو بگیره غیر از اون غسلایی که میتونه جای وضو رو بگیره، غسلی که نمیتونه جای وضو رو بگیره. اگر غسل کردم و وضو ندارم، میخوام نماز بخونم، کفاف میده؟ فرمود نه وضو تو باید بگیری. پس اینو چی میگین؟ اگه منظور اون بود این چیه؟ خیلی من درآوردیه. من تو دانشگاه اصفهان سخنرانی میکردم، یه جوونی پاشود گفت که این که در اسلام اومده گندم و جو زکات دارد برنج نداره آیا به این دلیل نیست که پیغمبر توشه به جزیره عربستان بود اونجا برنج نمیشنختند پیغمبر با برنج آشنا نبوده لذا برنج و مطرح نکرده. گفتم اولا خدای پیغمبر گفته خدای پیغمبر خالق برنج خدای پیغمبر میدونست برنج هم هست. و این خدای پیغمبر توی این قرآن راج به پیغمبر فرموده و ما ی تقال هوا انه و پیغمبر همه چیزو بر مبنای وحی میگه اگه میگه این واجبه این حرامه خدا بهش گفته سانیان جالب حدیث دیده بودم از پیغمبر پرسیدن یا رسول الله شما که فرمودید گندم جو پس برنجی فرمودند برنج جز اینا نیست اخه این نمیشه که ما سلیقه ای با دین برخورد کنیم بعد بگیم چرا دینه فاضله ای که مکتب انبیا میخواهد تحقق بیابد نیافت ما هنوز درایه به که وحی چیه وای چگونه بیان میکنه معرفت ما نسبت به وحی چگونه باشه داریم التقاطی برخورد میکنیم لذا ایشون چی میگه آخرش خیلی عجیبه و ناسو انما هلکوا لترک همزالک و اتباع آراهم مردم ملا محسن فیض 400 سال قبل مردم هلاک شدن به خاطر اینکه این روال درست فهم حکم خدا را ترک کردن و تابع نظر شخصی خودشون شدند مثال ارز میکنم اب نداره در مثال برای ساده کردن مطلب آقا من تو کلاس دانشکده پزشکی زیر نظر اساتید قرار بود پزشک بشم اونی که تجربه کرده بود یاد گرفته بود خونده بود هر سر کلاس گفت من به سلیقه خودم یه جوری دیگه تعبیر و تفسیر کردم خب من اون پزشکی نمیشم اون میگه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علی المیزان جلد پنج صفحه 258 یادم نمیره. توی شهرستانی بودیم در خدمت مرحوم استاد مطهری تو ماشین نشسته بودیم در خدمت بریم پیش کسی المیزان رو امانت در اون شهر برای ایشون گرفته بودیم ببریم به طرف بدیم خدایا تو شاهدی با این به تا گوشم شنیدم ایشون فرمودند که 100 سال دیگه میفهمن علامه چی گفته تو المیزان بعد این جمله را فرمودن الان متاسفانه مثل ریگ این تعبیر ایشونه مثل ریگ و علامه طباطبایی فوش میدن چرا آقا ما تو دانشگاه بودیم با دانشگاه سر کله میزدیم گروه و فرقان دا میگیره یه مزخرفاتی به نام تفسیر و قرآن می بافند. علی فلاممیم که الكتاب لاری به فيه دنل للمتقین اللذین يؤمنونا بالغیب می یعنی مبارزات چریکی زیرزمینی. شهود مبارزات مثلا می دلیلش چیه؟ آه. شما شماها تحت تا تاثیر استاد مطهری علامه طباطبایی هستید عربی بخونید منطق بخونید اصول بخونید فلسفه بخونید تا ول کن قران رو بعد همه بفهمند گفتم خب اینجور که تو میفهمی ملاک فهمش چیه بنده میگم یه چیز دیگره بعد این درده آقا از یه طرف میگه دیشا برس کردم به خود بنده تو این تهران چقدر دارن بعد میگن که چرا بحث قرآنی میکنی قران تفسیر نکنی صحب کنی امام زمان اش بیارن ایشون باید بحث کنن. شما حق ندارید قرآن بفهمید به خود من حضوری فوش میدن با همین گوشم هم رو شنیدم این یه درده همون حالت اخباریگری و حالت اشعریگری درد دیگم اینه آقا قرآن را باید بفهمیم بفهمیم چگونه یعنی مبارزات چریکی زیر زمینی خس کجا در آوردی همون ملاک میخواد لذا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علی المیزان جلد 5 صفحه 258 ان الكتاب والسنه القطعیه من مصادیق ما دل الصریح العقل على كونه ما من الحق و صدق و من المحال ان يبرهن العقل ثانيا على بطلان ما برهن على حقيقه اولا عجب حرف عمیق یه کتاب کتاب قطعیه ما شکی روش نداره سنت قطعی یعنی اونی که مسلم باشه که پیغمبر گفته نه اینکه ما ساختیم و جل کردیم و از خودمون در آوردیم سنت قطعی معصومین من مصادیق ما دل صریح العقل علاکونه امامن الحق از مواردی که عقل راحت میتونه بگه اینا حقه عقل میتونه حکم کتاب حقه سنت حقه حضرت حق حقه سنت حقه معصومین حقه و من المحال این یه محال عقلیه که عقل چیزی را که با برهان ثابت میکنه بعد بطلانش رو مطرح کنه یعنی مثل اینه که بنده الان به شما بگم تو محسوسات بگم بعد تو معقولات تو محسوسات از بنده بپرسیدی نورفکن راشنه بله یه لحظه دیگه بگم نه خاموش نشده باقیه شما تعجب نمیکنید شما مگه چشم نداشتی گفتی بله پس الان لحظه بد حتما نابینا شدی یه مشکل پیدا کردی عقل وقتی وارد میشه کلما حکم به شر حکم به عقل با اون مقدمات بعد نمیتونه برهان عکسش پیدا بکنه خب پس ما اینجا یکی از مشکلاتی که نگذاشت وحی تحقق بیابد امام حسین علیه السلام هم در رابطه با کربلا این همه فریاد میزنن چیه؟ انا ادعوكم الى كتاب الله و سنت نبیه. من شما رو دعوت میکنم شما رو میخونم بدون کتاب چی میگه بیاید ببینید سنت نبی چه میگه و ان السنه قد امیتت سنت مرد سنت گذاشتن کنار و بدعه قد اوهیت بدعها زنده شده جای سنت رو گرفته و انتصمه و قولی و توتی او امری خودش رو مطرح میکنه چرا؟ حالا این از زبان ما رضا عرض میکنم اگه حرف منو گوش کردید متیع من شدید اهدکم الاسبیل رشاد من شما رو برمیگردونم تو را میارم ولی خب اینجا یه مشکل دیگه پیدا شد مشکل دیگه چیه؟ سنت را بر مبنای دخالت غلط عقل بد معنی کردن اون کسی که قرار سنت را بشناساند جابجا کردند کردن به جای این که امام حسین بگه سنت چیه گفتن یزید چی میگه لذای این تکیه زیارت و آشورا رو دقت کنید یک جهان معنا داره لعن الله و امتن خوب این روشن اونایی که تو رو کشتن از رحمت خدا دور باشن لعنت خدا بر اونها باد کی همچه ستمی رو همچه ظلمی را همچه جنایتی را روا داشتن این جای خودش درست اما مهم اینجاست و لعن الله امتن دفعت کن ام مقام کن و ازالت کن، ام مراتب و لتی رتب الله فیها لعنت خدا بر اونها باد که شما را از جایگاهی که بودید کنار زدن این مرتبه را به کسانی دادن که لیاقت این مرتبه را نداشتند اگر سر کلاس درس دانشجویان استاد لایق را از کلاس بیرون بکشید یک بیسواد خائن مقرز را سر کلاس بفرستید این لو شدن تعلیم است. لذا امام حسین علیه السلام فریاد برمیاره باباش امیرالمؤمنین هم این درد رو به ما اشاره کردن کجا این جمله مولا رو دقت کنید تا مغز استخون آدم آتش میگیره الدهر انزلنی الدهر انزلنی حتی یغال معاویه و معلی ببینید روزگار به کجا رسنده؟ میگن معاویه با علی مگی نا قابل مقایسه بود حالا فرمایش امام رضا علیه السلام رو به عنوان یک شاهد از زبان معصوم در مکتب من و شما هم بیارم در تعیید عرائظم عیون الاخبار رضا سلام الله علیه جلد دو صفحه نود نه لولم یجعل لهم اماما غیمن امینن حافظا مستودعا اگر دین دینی باشد که پیغمبر آمد کتاب از طرف خدا آورد گفت این کتاب خدا این دستورات الهی منم که دارم از میان شما میرم لم یجعل لهم اماما ولی برای اینا امام قرار نده و خدایی که این شریعت و قانون رو معین کرده امام رو قرار نده امامی که قیم باشه بتونه نگه داره امین باشه حافظ دین باشه ودایه الهی رو بتونه نگه داره لدرست المله و زحب الدین ملت بیچاره میشه دینم از بین میره و قیرت سنن احکام سنت ها و احکام تغییر میکنن آقا واقعیت زمان نشون نمیده چقدر از پیغمبر گذشته بود که تصریح کردن پیغمبر گفته حلال ما میگیم حرام پیغمبر گفته حرام ما میگیم حلال بود یا نبود محللتان فی زمن نبی و انه آهرمه به یزید میگفتن شراب در اسلام حرامه من با این مسیح میخورم یعنی بازیش امام رضا چی میفرماد اگر خدا دینی را که فرستاده است قوانین احکام دستورات رو در کتاب معین کند امامی که قیم و امین و حافظ ودایه الهی باشه قرار نده لدرست درست المله و ذهب دین و غیرت سنن والاحکام ولزاد فیه المبتدعون و نقص منه الملحدون اونایی که اهل بدعتن یه چیزایی رو به دین اضافه میکنن، اونایی هم که ملحدن یه چیزایی رو از دین کم میکنن و شبعوا ذالک علی المسلمین امر بر مسلمان ها مشتبه میشه. چی کار کنیم آقا؟ حق میگن. لاننا وجدنا الخلقه منقوسینا محتاجین غیر کاملین مع اختلافهم و اختلاف اهواهم ما اینم میدونیم داره جامعه شناسی امام رزا رو دقت بفرمایید امام رضا می انا وجدنا الخلقه ما این مردم رو می شناسیم یافته ایم که چجوریه خیلیاشون کمبودایی دارند همه حقایق خوب نمیفهمن غیر کاملین کامل کامل نیستند ما اختلافهم و اختلاف احواهم استعدادا فرق داره هوشها ها فرق داره زوق ها و سلیقه ها فرق داره حواهای نفسانیشون هم در درونشون مختلفه و تشتت آنهاهم شکل های مختلفی هم با هم دیگه دارن فلولم يجعل لهم غیما حافظا لما جاء به الرسول اگر یک قیمه حافظی از طرف خدا نباشد که بگه اینه که رسول آورده اینه اون نیست اون نیست لا فسدوا علام نحو ما بینا و قیرت شرای و سنن و احکام و ایمان و کان فساد الخلق اجمعین پس با نبودن یک شخص فردی ولو کتاب باشد اجازه میدید مثال ارزم وقت گمه استادی رفته سر کلاس 50 سال خونه دل خورده زحمت ها کشیده تا اونچه که حق میداند و فرا گرفته به این چهار شاگردش منتقل کنه حالا میبینه که عجب یه شیاطینی یه حقبوازایی یه آدمای مرموزی خودشون لابلای این شاگردا جا زدن تا استاده سر کلاسه کاری نمیتونن بکنن منتظرن استاد بره یا فوت کنه یا از این جمع جدا بشه اونا بتونن زمینه سوء استفاده خودشون فراهم کنن استاد یا میتواند یا نمیتواند اگه نمیتواند من حرفی نمیزنم حالا عرض میکنم ولی میتواند چه میتواند چون اینا رو فهمیده بگه من رفتم حرف من حرف این آغاست نظر من نظر این آغاست هر او بگه همونی که منم حالا تو شما 50 نفر اونی که میخواد حق را بفهمد میاد سراغین این اونی که نمیخواد یه بحث دیگریه این کارو خدا و پیغمبر راجبه بعد از پیغمبر کردن و لذا خدا به پیغمبر برای بعد خودش میگه بلغ ما انزل که من ربک و الا لم ما بلغ در رسالته میگه اگه اینجوری نباشه چه میشه و کان ازالک از فساد الخلق اجمعین این کلاس همه بیچاره میشن چون تو سر کله هم دیگه میزنن لذا اون بحث عقلی که اگر خدا حکیم است فعل حکیم از حکمت برخورداره فعل حکیم نقص ندارد اول سوره مبارکه حود آیه شماره یک بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت ملت حکیم خبیره. هم او حکیم است هم کتابش از حکمت برخورداره چون او حکیم است کتابم حکیمه کتاب حکیم هم با اون سب حکمت میتونه شما رو به اون سعادت برسونه یه نمونه بارز عملیش در کربلا نمونه بارز قولیشو عرض کردم امام حسین فرمودند من شما رو میخونم به کتاب خدا به سنت خدا سنت مرده به زنده شده ولی اگه میخوای تو راه رشد برید و سخن من گوش کنید که من از طرف خدا به شما بشناسونم اما حالا یه نمونه عملی جانم به فدایت یا قمر بنیهاش خدا یا کمکم کن بر احساسات غلبه کنم بتونم بگم خدا میدونه آتش میگه نمیتونم این نقص قبول دارم وقتی بی اینجا میرسم عواطف و احساسات میاد جلو خودمو نمیتونم کنترل کنم امیدوارم بتونم اول تمام عظمت اول تمام بزرگی اول تمام باب الهوائیجی اول تمام عظمتی که من نمیفهمم من نمیفهمم فقط انقدر بگم امام زمانشه امام حسین علیه السلام امام زمانشه امام زمانی که آخرین از خمسه تیبست کسیش که پیغمبر میفرماد او را دوست بدارید که مهم نیست اونایی که او رو دوست دارند دوست بدارید خدا شما را دوست می‌داره احب الله من احب حسینا حسین چس است در پیشگاه خدا که خدا دوستداران حسین را دوست می‌دارد خود حسین که شأنش اجل حالا این انسان به این عظمت که پیغمبر به عنوان لما لما خلقت الافلاک برجسته‌ترین در عالم امخان ز احمد تا احد یک میم فرق است جهانیان در این یک میم غرق است همه عظمت عالم منهای میم ممکن بودن ممکن الوجودی جلبه حضرت حق درو تجلی کرده بر مبنای شناخت عرفانی مقام نبوت نسبت به امام حسین چیکار میکنه؟ ام سلمه میگه درد زایمان زهرا بود برای امام حسین پیغمبر پشت در هی حرکت میکرد پیغمبر خدا نکل علا خلقن عظیم خلقش مسکه بیتابی میکنه هی در میزد بچه به دنیا نیمد؟ هم سلاما میگه عرض کردم که یا رسول الله به دنیا بیاد میگم فرمود به دنیا اومد فوری بیارید پیش من هی hey, چند بار در زد تا بچه به دنیا اومد توی پارچه پیچیدم گفتم امر نبیه اول برام سراغ پیغمبر دویدم اومدم جلو تا من اومدم پیغمبر دوید اومد جلو چرا از من گرفت این انگوشتای مبارک بر زیر چونه برد بالا زیر گلوش بوسید حسین مننی و انا من حسین احب الله من احب حسینا از اون روز اول داره برخم حالا این حسین روز آشورا وقتی میاد الغمی نگاهی به ابل میکنه چی میگه؟ الان انکسر از زهری کمرم شکست امام زمانشه این کیه که امام حسین میفرماید انکسر از زهری و قلت حیلتی من نمیفهمم یعنی چی یعنی به تعبیر خودمونی بگم دیگه بیچاره شدم این کیه؟ چرا چرا مقدمه بچینم اینجا برسم دقت کنید اصلا انبیا اومدن ما عبدالله بشه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما رو عبدالله بکنم کی عبداللهه قصد قرب الهی کی عبودیتش بیشتره که قرب خدایی بیشتر داره قرب خدایی یعنی قرب به اون چه که خدا میخواد صفات خدا فنای صفاتی فنای رفتاری فنایه در اون چی که مورد خدا خواست خدا خداست خودشو بزنه کنار اونی که خدا میخواد بخواد خب حالا اول فاز علیه السلام چی میخواد؟ اونی که خدا میخواد خدا چی میخواد؟ خدا میخواد که تابع دین او باشید تابع دین او شدن چگونه است؟ به فرستادگان او ایمان بیارید این میشه عبد صالح میشه عبد لذا شما امام صادق فرمود در زیارت از تبلفس چی بگید السلام علیک ای عبد الصالح سلام بر تو که عبد صالح بودی نشانه عبد صالح چیه المطیع لله ول رسولهی ول امیر المTA ول حسن ول حسین نشانه اطاعت خدا نشانه اطاعت رسول خدا نشانه اطاعت امام حسن نشانه اطاعت امیر المؤمنین در اطاعت امام حسین لذا أبل فضل السلام در مقابل امام حسین یا سیدی و مولای حتی برادر نمیگه یا سیدی و مولا. آقای منی، مولای منی، امام حسینم میدونه طرف حق شناسه، بر مبنای حق شناسی ارزش داره، لذا همه رفتن، حالا منده ابلفض، ابلفض اومد، حالا علی از حسابش جدا بود، ابلفض اومد، داداش سینه تنگی میکنه، من باشم، پسر پیغمبر رو اینگونه تنها ببینم، پسر زهرا رو اینگونه تنها ببینم لذا امام حسین اول رو در آغوش گره دوتایی گریستن امام حسین به تعبیر من زبانم بریده باد اگر جسارت نکنم دلش نیومد به اول بفرماد برو فرمود با هم بریم با هم اومدن میدون ولی یه معموریت به اول داد داداشم اگه تونستی؟ آبی برای بچه ها بیار امام حسین علیه، امام عزت اولفض علیه السلام مطیع خداست نشانه مطیع خدا مطیع برادرشه نه برادر به عنوان برادر به عنوان امامش لذا چا امام فرمود آب بیار اولفض تمام قدرتش قدرتشو بسیج کرد که خودشو به شریعه فراد برسونه امر امام به شریعه فراد رسون طبق نیاز طبیعی ذاتی وجودی دست بر زیر آب مشتی از آب آورد بالا فضا کره اتشال حسین بیاود تشنگی حسین افتاد مگه میتونه از این آب بنوشه آب روی آب ریخت مشک بر آب کرد در حسرت اون کفی که از آب برداشت و فروف کند و بگذاشت هر موج بیاده اون کف و چنگ کوبت سر خیش را به هر سنگ چون ماه به چارده براید به گمان فراتر آید ای بحر بهل خیال باطل این ماه کجا و بو فضائل مشک و آب کرد از شریعه بیرون آمد حالا تمام توجهش به سوی خیام عبی عبدالله آب و شمشیری به کتف راست و رود آمد دست راست بریده شد نمیگه دستم با دست چپ به زحمتی مشک چپ رو به دست چپ و چپ گرفت گرچه دست ندارم والله ان قطعتم یمینی اني اوامي ابدا ان دینی ولی دست از دینم بر نمیدارم فوری نشون میده کدوم دین دین تحریفی نه دین بلابین دین بدفهمینه و ان امام صادق اليقینی نجل نبی طاهر الامینی اونی که امام به حق دین رو نشون بده شمشیر به دست چپشم اصابت کرد فوری مشکو به دندان گرفت آیا میتونم دیدید گاهی ما در این کنایه ها میگیم این به دندون میکشه یعنی با تمام وجود امر امامش رو اطاعت کنه اینجا بود که تیر به مشک آب زده مش سوراخ شد آبها داشت به زمین میریخت هر میگه دیدم عباس با یک نگاه حسرتباری به این آب نگاه میکنه لزان چشم اولفظ و نشانه گرفتم تیر البره به چشم عباس اصابت کرد اینجا سر مبارک و پایین آورد دو تا رو بالا شاید تیره از چشم در بیاره عمود آهدین محکم به فرق عباس گفته شد از به زمین داد برای اولین بار فریاد زد یا اخا ادرک اخای زینب دید امام حسین دست به کمر گرفته از میدان داره میاد داداشم چه خبر از عباسم چه خبر اومد ستونه خیمه عباس رو کشید یعنی بچه ابو عبو